ایران بازنگری در تاریخ قلمرو میانی ریپورسچ کردن ریپورت تو ایران ارگور هست یا نیست؟ پورسچ که صادرات میکرد میخواد برش بگید رو الان تو ایران وچ به اینجا دریم میگیم ببینید آقا من دارم چی دارم یک ساعت دارم میگم میگم آقا اسم شهرها الان ما از شمال خراسان دریم تو بالای شمال چیز گسترش پیدا کرده تو شمال میاندودان گسترش گسایش پیدا کرده بعد مگه میشه بیایم بگیم آقا ایران وچ گسترده شده اینه. و از آن تحمیم میدادن که ایران ویچه این چون ایران ویچه اولیه ایران ویچه اولیه که در وندی دار ایران ویچه بعدم کرده یعنی اجازه بدیم نامش بلگستارش بدو کردی این یک بحثی بود به نظر من زیادم جای چالش برانگیز نیست این ایران ویچه من گفتم که این کوه دماوند هم تو ایران ویچه هستم نیست تو ایران می‌دونید من یه کمی بحث تو تصور کردن هست ما داریم دیگه یه تصوّر کردن یه ببین... سیاسی تشکیل شد اونم در دقیقاً اصلاً گستره‌ش خواستهن برن دلشون خواسته دوران ساسانی از این کارا زیاد داریم ببینید عمرن گفتن ری که ری دیگه ریه راگای چیزی گفتن آذربایجان است مات پهلویست راگا. راگاه راگای دقیقاً اون روز که ری شاتی آذربایجان ندارد مگر به طریقی که این سرزمین ماد بوده ماد دو شرقه شده آذربایجان و ماد سرجش مونده ماد کوچک اولیه ری در آذربایجان است منطوشم مات کوهنده و بنده 14 که آیه کریمه خوندن و شما هم تاییدش کردین الان دیگه شما اینجا نام ایرانوج ایران دیدین تا اینجا که نداشت خیلی اصلا بودو و نبودش مطرح نیست اینم توانا بفرخش این آنجا آن... منظورش کجاست بس خب آنجا کجاست شما فرمودین حالا من بهت میگم الان هم جاشو بگم دیگه من چرا الان وقت گرفتم صحبت ببقی. کنم آن مهر توانا نگاران کشورهای حالا اینا تلفظایی داره دیگه ارزهی سوهی فرداش ویدا داش ورو برشتی و ورو او جرشتی اون شش کشور اطراف خونی رست آن مه نگران این است و نگران این کشور خونی رست درخشان است متأخری. یعنی جایی که داره می‌بینه قضیه متأخر این نظر شما سازمان زمین این مقدمه این فلاته نظر من مقدمه نه آبه. اصلا اینطوری نیست به نام ایزد یکتا با عرض سلام و ادب و احترام خدمت هم‌میهنان گرامی همراهان عزیز به ویژه علاقمندان برنامه ایران وج در قسمت 29م این برنامه در خدمت شما هستیم بازخوانی تاریخ قلمرو میانی در این قسمت در خدمت دو تا از دوستان و همراهان این برنامه و کاشناسان این برنامه هستیم جناب آقای سورنا فیروزی عزیز و جناب آقای سعید کریمی گرامی ادامه میدیم مبحث خودمون رو در رابطه با تاریخ کلاموی میانی و تاریخ ایران خوانیرس و ایرانویج که مغفول مونده تابحال حال در هیچ کتاب درسی رسمی دانشگاهی و دبیرستانی تدریس نشده اونها رو مورد بررسی قرار میدیم تا باشد که زمینه پژوهش و تحقیق و جستجو و کندوکاو در این باره فراهم بشه. ابتدا می‌خوایم از جناب آقای فیروزی شروع کنیم. جناب آقای فیروزی از اول های این برنامه تا حال با تقریباً تمام کارشناسان برنامه از داره مخالفت در اومدن و معتقدن که اساسا تمام اون شخصیت هایی که تحت اون پیشدادیان و کیانیان هستن اینها شخصیت های واقعی بودن اسم داشتن رسم داشتن پادشاهی کردن حالا شاید مثلا مثل پادشاه های هخامنشی کاخهای گستردهی نداشته باشن که اونم هم طبیعی هستش به خاطر دوره های تاریخی ولی اینها ها پادشاه بودن سرزمین تشکیل دادن اندیشه سیاسی داشتن و حاکمیت سیاسی روشن و مشخصی رو تا به حال داشتن از ایشون من خواهش می یک خلاصه ای از اون دلایلی که دارن چون در بنامه های گذاشتن به اون اشاره کردن یک خلاصه جمبندی از دلایلی که فکر میکنن و رو اثبات میکنه و درستی فرضیه ایشون رو به اثبات میرسونه رو به ما بگن که اساسا چرا اینها رو اصلا یه شخص میدونن دوره نمیدونن و دوم اینکه دوره پیشدادیان و کیومرس اصلا چجوری شروع شد این کیومرس اصلا از کجا اومد تو کجا حکومت تشکیل داد و نظر ایشون که خودشون هم باستان شناسی هم خوندن و بضافه اینکه جنتیک هم خوندن این اصلا ای کیومرس کی بوده و تیره و حالا نژاد و چیزش از کجا بوده و تا اینکه بیان بعد از اون هوشنگ و سیامک و حالا فکر کنم به سیامک ایشون اعتقادی ندارن چون توی کتابش من دیدم اسم سیامک نیاوردن چون سیامک تو فردوسی هستش حالا اینا رو به خاطر بسپرین سوالات بنده بعد تحمورس و هوشنگ و جمشید و از به حضورتون زهاک و فریدون این افراد رو از کجا اومدن این افراد از چه خاندان هایی بودند دلایلشون چیه و کجا دقیقاً حکومت کردن و محدودی حکومتیشون کجاست حالا در واقع ملاحظه وقت رو هم نکنن چون ما میخوام یک جنبندی و دید کلی از فرضیه ایشون داشته باشیم حالا اگه مثلا فرصتیشون تموم شد فرصت رو میگیریم میدیم با آقای کریمی بعد مجدداً شما ادامه بدین لذا می‌خوام این جنبندی و یک دید کلی و شمای کلی از فرضی خودتون رو مطرح کنید ضمن سلام علیکم باشه نمایندگان عزیز می‌فرمایید با درود بر شما و شنوندگان ببینید در باستان شناسی ست گذشته گذاشته سرزمین های مختلف مثل میان رودان مثل یونان مثل مصر و مثل چین یه تحول بزرگی رخ داد که اینو من بارها گفتم. بله ماننده این که ببینید در مورد مثلا مصر بخوام من مختصرا صحبت کنم برای مصر ببینید کتاب هرودوت کتاب دوم هرودوت ویژه تاریخ مصر از دیر هرودوت بله. و انقدر این کتاب ناقص هست که مصر شناسان در صد سال اخیر رفتن، کتاب های دیگر رجوع کردند دیدن کتاب هرودوت نمیتونه همخوئین داشته باشه با اسناد بومی مصر بله رفتن متون دیگه متأخر یونانی رو چک کردم و بتطابقی نهایی که دادن دیدن هرودوت ذره‌ای از تاریخ مصر رو گفته و اگر می‌خواستن به تاریخ مصر بس... از دید هرودوت بسنده کنن قدمت اهرام مصر بعد از جنگ تروآ بود این 3200 سال حدوداً از سال پیش دقیقا. 1200 پیش, پیش از میلاد دقیقاً حدوداً ولی خب با اون کاری که کردن رو دیدن نه این قدمت 4500 ساله و اون فرعونایی که رو نام میبره اون اهرام رو ساخته اینا 1300 سال قدیمی تره از چیزی هستند که رو میگه و بعد شروع کردن تک تک فرعنه رو تا تو لیست کشیدن بیرون چک کردن مختصات توضیح داده‌شون رو براشون و رفتن در آوردن تطبیق دادن کش کردن و چیزی که ما امروز دست داری میناست که آرامگاه نخستین فرعون قسین نخستیم. دودمن تومن داشم امروز در اینترنت نمی‌دیدم یعنی نارمر که حالا میگن این هم منیس هم هست یا منیس نا جستین فرونه دیگه قبل از اونم فراعنه بومی دارن که دنبال اونام هستن چون اسامی‌شون به دست اومده بعضی‌شون حتی قبر‌هاشون به دست اومده یا نامهاشون روی یه شیئی به دست اومده ولی خب خیلی چیز نیستن این یعنی مصنوعات هستن ولی ترتیب مشخص نیست ولی این هم نخستین فرعون هم آرامگاش مشخصه و هم نامش به دست هم کیرداریش در مدت متأخر اومده این قدمت هزار سال پیش پنجهزارو از میخوام بعدی پنجهزار سال تا پنجهزار سال پیش یعنی فاصله نخستین فرعون تا آخرین فرعون که از بین برد فاصله خیلی زیاد خیلی است اینها اینو... فرعون پنگزار سال پیش اثبات کردن و دنبال پیش از اون هستن برای مورد چین ببینید یا میان رودان بذارید من اینا رو به ترتیب نوشته برم جلو. ببینید 100 سال پیش آقای جورج کامرون تا قبل از کشفیات اون پادشهان نخست، فرمان روای نخستین دودمان های او رو اروک و غیره که فقط اینا ما به صورت میان رودانی نمیشناختیم اسامیشون چون میان رودانی نبود. نوشتهای متأخر یونانی بود به عنوان پادشاهان نخستین کلده معروف بودن یه اسم یونانی ردیف شدن با سال‌های اجور قریب نوشته که تا اینجا آنچه گفتیم یا به افسانه مربوط می‌گشت یا به افوادی مبهم و نامشخص در مرز میان افسانه و تاریخی سادن یا مال افسانه است یا مال اونایی که مبهمند یافته‌های سال‌های اخیر چندین شخص دیگر را که تصور می‌رفت افسانه‌ای باشند از سیتی افسانه به قلمرو تاریخ واقعی انتقال دادند و ممکنه است برخی از شخصیت از شخصیت‌ها بخت خوشیاری کند و از تاریکی افسانه به روشنی تاریخ درآییم. در به روشنی تاریخ در درآییم. یعنی اون موقع هنوز سراغاز این قدم بوده. نه. ولی باز این آدم خوشمین بود. از اون اتفاق، از اون چیزی که در واقع ابتدای راه بود، امروز ما رسیدیم به اون حدی که تک تک اون اسامی متأخر یونانی به صورت میارونیش به دست اومدن و همین پادشاه هستن. کسی هم نگفت چرا چلو فلان پادشاه 36000 سال سی و شش هزار سال یعنی تمام متون پیشتریکی یعنی بگردید عدد بالاتر از هزار سال بدونه میکنید یه مورد زهاکه این سی و شش هزار سال نا توشون هست و اینا اثبات شدن و تخمینشون زنن که آقا این مثلا صده چار روم هزاره مثلا سوم است برای چین هم به همین صورت در چین خیلی شبیه ما عمل میشد میومدن این داستان های سنتیش رو می نوشتند سوماچی که تاریخ نگار روزگار معادل اشکانیه ما بود در دوران امپراتور شی که این نقوسی امپراتور چین یک پارچاست است این امپراتور رو که تاریخ از من با روشه متون رو بسوزونید هر چی قبل از من هست هر کی این کارو نکنه باید اختش به مورخان این رو گفت سوماچی نشسته بود فکر میکنه که من چه کنم چه نکنم تن داد به اختگی و اینها رو حفظ کرد و الان دنیای چینی مدیونی نقاست با این وجود با این فداکاری یک نسل از باستانشناسای های چینی اومدن رو کار و مسخره که الان رشته های چینی رو این نوشته های سنتی اون گفتن کدون پادچه ها همه قصه است اینقدر ام کنه اینقدر کار کنه بافند کنه کن کنه چیز کنه. تا اینکه یه آقای به اسم لیو تیون اومد این این داستان ها رو میشننا رفت عیادت دوستش و دید که، یسته رو اون لاکای سنتی که واسه دارو بودن وجود داره اینا رو خوند و فهمید که خبری هست رفت پیگیری کرد منشأ این چیزا رو پیدا که همه رو گردابری کرد معرفی کرد بعدها پیگیری شد و بعد دیدن که سلسله دومشین دو واقعا وجود و اثبات شده الان دنبال سلسله یکم هست یعنی پی کیانیانشون اثبات کردن با قدمت 4000 سال دنبال پیشدادیانشون هستن به عنوان شیع. این مثلا 4200 سالشه و پیش از اون خلاصه دنیا داره این شکلی کار عمل کنه در یونان هم به همین صورت. در حوزه فرهنگی رومی هم به همین صورت. امروزه افسانه رموس و رومولوس، رومولوس که این دو تا دو تا برادر دوقلو هستن، گورگینا رو شیر داده. بچه‌ها یتیمه میگن که گورگ شیرشون داد و بعد اینا رفتن بنیانگذار شهر روم شدن. اصلا شهر روم از اسم رومولوس اومده. بله. در متون یونانی اومده که این به فلان الان دقیقش یادم به فلان تاریخ پس از المپیک اول ساخته شد. اولمپیک اول 776 پیش از میلاده. این پس از اولمپیک اول 750 فکر کنم چه و چهار ساختنش امروز این سندیت داره این, رومو و این اتفاق بنیانگذاری در صده هشتام پیش قبل از میلاد برای شهر روم سندیت داره به همون چیزی که سندت ها میگن و منصوب همونست به رومولوس ردش نمی کنم این رومولوس یه شخص بوده این شهر رو بنیان گذاشته به همون تاریخی که متون میگن این اینو به رسمیت میشنسن در ایران خب ما شون از خامنشیان و ما تا آگاهی نداشتیم به علت از دست رفتن متون یا مسائل سیاسی به هر دلیلی ما تا حتی ساسانیان قطعا آگاهی هایی داشتن و این آگاهی که باید داشته باشن از گذشتنشون بله اون چیزی که ایرانیان در باور سنتیشون داشتن پیش از اسکندر و پیش از ما تا و پس از اس... از دا... داروش سوم به بعد است وقتی در سده 20 ها با این تاریخ مات و هخامنشی و اون جهان حکومت جهانی هخامنشی روبرو شدن اصلا از خود بیخود شدن یعنی فکر که این آخر دنیاست این اسم دیگه آخر در واقع قضیه است و اینا دیگه انگار این هخامنشیانم مثلا نگهدارند دیگه پس و پیشش مهم نیست از این قفلت و زغزگدی سو استفاده شد و تاریخ های نوشته شد در جهت افثان انگاشتن تاریخ های کوهن پیشداری کیانی که تاریخ های ما بودن و حتی بخش هایی از ماتا که در متون دیودور و اوزبیوز همچنان وجود دارن برای بخش هایی مثلشون اعتبار دارن و این ماتاشو پاک کردن و متمرکز شدن رو مات هرودوتی و امپراتوری اخوانش این قفلت و این چیزها باعث شد که ایموتونه كهن ایران کاملا بی اعتبارشه برای یه گروه پژوهشگرن که خواسته اعتباری ببخشن اونمرا گفتن که نه اینها همون داستان های ماد و هخامنشیان رو میتونه کورش باشه بنا به دلایلشون یا رو میتونه کیاکسار باشه و وقشتره باشه باز بنا به دلایلشون کمبوجیه میتونه کاووس میتونه کمبوجیه باشه چون لشکر کشیده مثلا به مصر و از این تطبیق کاریه كه در این جای دونون شما اینا نمیبینید یعنی مثلا ما 13 تا رامسس داریم 16 تا کلئوپاترا داریم، حالا اگه ادلش رو برعکس نگفته باشم. و کسی از این فکرون 6 تا مردشیرم خودمون داریم. بس اگه مثلا می‌خواستیم این تطبیق‌ها رو کنیم، بردهشیر اول و شیشو مثلا یک یاد باشن کهشون در اخامنیش درس آسانی، اینا معنی نداره. اگر پیدا نکردین هر این حرکت آخر هست. یه بس پس افسانه انگاشن، یه عده تطبیق کردن، یه عده اومدن بگن که نه افسانه است نه تطبیقه. اینها اتفاق خاطرات تاریخی گذشته ای ایرانیان بوده که به صورت سمبولیک و نمادین در اومده. که الان جای مختلفم این نظر داره گسترش پیدا می‌کنه. ما بیشتر می طرفدار رو هم داره اتفاقا. مجموع این نه به نظرم این آخ... حرکت ولی تسلیم شدن هست. مثل یه آدمی است که دیگه در و دیوار ذره چاره‌ای نداره، خورج رو تطبیق میده با شرایط موجود. ما باستان شناسی ضعیفمون که از نظر اقتصادی افرادی در درون دارن چیز میکنن که اول استعداد ندارن چون اینا رو کنکور پاس داده به این رشته درجه چند و در سیستم آموزشی ایران. و خب همین آدم هایی که الان فعال هستن دنبال اقتصادشون هستن از مثل یه بیابون نیست که در واقع منابش کمه کسیستن نمیتو فکر کنه تو این بیابون مثل جوامع بیابانی میشن بنابراین از باستان باستانشناسی ضعیف ایران و تاریخ نویسی زعیفتره کنونی ایران این افراد میهندوست رفتن به رهیخیش و حالا میخوان از این صحبته بگن که مثلا زرهاک نماد فلان دوره شوم ایرانیان هست فریدون نماد فلان مثلا عالی ایرانیان هست هوشنگ نماد مثلا فلان دوره است که اینا خونه می ساختن. درصدی یه کسی یک ماده واجد تکاملی گذرنده باشه درک میکنه که ذهن بشر، ژن بشر ذخیره کننده آنچه بر سرش اومده هست. ولی مغز بشر نگهدارنده آن نیست. یعنی این, یعنی این جمله یعنی اینکه بله ژن ها شما رو قریزی وادار میکنن که سینه مادر رو یک نوزاد بمکه. بله. یه چیز جنتیکیست درست. نهادین است. ولی مغز اون اینو نمیدونه. یعنی غریزه است، یه چیز عقلانی. انسان کهن، انسان عصر نوسنگی و میانسنگی که انسان هوشمند اون رو شکل میگیره. اصلا قدرت حافظش اونقدر نیست که این, این چیزای نمادین رو رژیز کنه این دیروزش یادش نمیاد. این غذای پیروزش یادش نمیاد. یعنی حتی جم نشده یه سری آدم عین گله در یه قار زندگی میکنه این دیگه بهترین حالتشون هست پس در واقع شما اون برداشتی که بنده از فرضی های شما دارم اینه که اساسا در پارین سنگی و میان سنگی چیزی تحت ما تمدون نمیتونست نمیتونسته وجود داشته باشه نه فرهنگ بوده تمدونه فرهنگ بوده, فرهنگ بوده. فرهنگ بوده. از نوسنگی به اینور هستش که چون در واقع شما مثلا دوره پیشدادیان تا نوسنگی دیگه حتی در فرض شما نوسنگی نو هستش فرهنگ نوسنگی است فرهنگ نوسنگی است دوره دوره نوسنگی هم هست بله. بله. یعنی در واقع شما برای قبل از آخرین یخ هیچ تاریخ مدون و مشخصی که مثلا یک کشور تشکیل بشه یا اندیشه تشکیل شده قابل نیستی. نمیتونیم چون از تق... اون دوره تکام انسان شناسیه موضوع مفاهیم چون چون که ما مثلا من نمیدونم کتابی خوندم اسمش یادم رفته که آ ها رو در 35000 سال اخیر مطالعه بررسی کردید شما نئاندرتال ها رو میدونید تدفین داشتن وقتی تدفین دارن یه دنیای پس از مرگ من... اعتیاد دارن این انسان شناسی است، این تاریخ شناسی یک ملت نیست یک جمعیت یک نژاد نیست میدونید این مفاهیم انسان است. اون چیزی که ما از پیش کیانیان داریم تاریخ یک ملت, ملت تاریخ یک مردم پس ما تاریخ یک ملت مردم تا اینجا پس ما به دلایل تونو تا حدود شنیدیم تاریخ اونها رو هم آماده باشید در دور بعد به شما خواهیم زد آقای کریمی حالا چون بقیه کارشناسان برنامه تشریف ندارند ما خیلی مشتاقیم که باز هم از ادامه فرمایشات شما در حوزه‌ی زبان‌شناسی و در مورد دوره‌ی جمشید که اون خیلی هم علاقه دارید و واقعا ثروت ما ایرانیان هستش ثروتی که بزرگی که ما ایرانیان در اختیار داریم در خدمت شما باشه می‌ذارم سلام که باشه نویدگان عزیز می‌فرمایید به نام خدا و درود فراوان درود بر نیای بزرگ ما جمشید نیای بزرگ همه آریایی های جهان از هندوستان بگیرید تا اسکاندیناوی ما بارها بارها بارها این ادعار کردیم جمشید نیای بزرگ همه این جمعیت های آریاری که بهش میگن هند که متاسفانه غربی ها و اینا رو فقط محدود کردن به ایران و هند در صورتی که اسنادی که با امید خدا ما رو رونمیکنیم و گفتیم مقاله کنیم همه اینا رو باید بپذیرن و خوان پذیروف که نرخی هرگز همچین چیزی نیست جمشید نیای بزرگ همایه هندو و اروپایی ها و همین آریایی ها هستش خدمت شما عرض شد که ما اینکه میخوایم اینقدر جمشید ما نو بدیم به قول معروف چون ببینید زمانه zaman جمشید زمان شما چیزی به نام قوم هنوز نمیشناسید هیچ دعوایی بین فارس و ماد و چه میدونم پارت و سنگس هند، هندی و هیچ دوایی نیست چه برسه به مثلا خیلی ریسترش مثل کرد و لور و گیرک و اینا اصلا تمام انسان این قلم یکی بودن بله، این یعنی نیکن. که یک وحدت تاریخی که کاملا اتفاق افتاده